بزرگترین خوششانسی که تو تموم این سال آوردم این بود که وقتی رسیدم خونه دیدم پیت مسئول آسانسور نیست. یکی دیگه متصدی آسانسور شده بود. برای همین فکر کردم میتونم بدون اینکه مامان بابا بفهمم برم تو فیبی و فیبیو ببینم و. بعدش هم بینیم که کسی بوی چیزی ببره بزنم به چاک. حرکت توپی میشد به سر. میدونی چی بهترش میکرد؟ اینکه این یارو متصدی و سنسورم معاشنگ بود برا خودش. لحنه عادی به خودم گرفتم و گفتم ببردم طبقه ای که خانواده دیکستاین زندگی میکردن. دیکستاینا همسایه روبروی ما بودن. بعد کلا هم و از سرم برداشتم که به شک نکنن و یه طوری رفتم تو آسانسور که انگاری خیلی عجله دارم در آسانسور رو بست آماده بالا رفتن که بودیم گفت خونه نیستن رفتن مهمونیه طبقه چار رو. اشکالی نداره منتظرشون میمونم برادر زادهشونم نگاه مشکوک احمقانهی به من انداخت بهتره تو لابی منتظر بمونی رفیق دلم میخواد ولی پام درد میکنه وا توی موقعیت مشخص نگهش دارم گمونم بهتر باشه رو صندلی دمه خونه‌شون بشینم. حالیش نبود چی میگم فقط یه اوهم میکرد و منو برد تا بالا. تا اینجاش که هیچی با مزه بود. فقط کافی بود چیزی بگی که کسی ازش سردر نیاره. اون وقت هر کاری بخوای برات انجام میدم. وارد طبقه که شدم خودمو به لنگیدن زدم و رفتم طرف خونه دیکستاین. بعدم تا صدای بسته شدن در آزانسو رو شنیدم برگشتم طرف خونه خودم خیلی هم سرحال بودم مستی کاملا از سرم پریده بود کلیدو در وردم و در باز کردم خونه ساکت بود خیلی آروم و محتاط وارد شدم و در بستم <تصفح> من باید دوست می شدم پسر خب تو سرسر و تاریک بود و طبیعی بود که نمی تونستم چرا روشن کنم بعد حواسمو جمع میکردم به چیز میزی نخورم که سر و صدا را بیفته بوی مسخره رو حس کردم خیالم راحت شد خونه. بویی که فقط مخصوص خونه ما بود نمیدونم بوی چی بود نه بوی گل کلم بود نه بوی عطر. نمیدونم بوی چی بود ولی هر بویی بود بوی خونهمون بود در درآوردم و خواستم آویزونش کنم تو کمد سرسرا ولی کموت پر جارختی بوده اگه دستم میخورد صداشون میرفت آسمون. به خاطر همین بیخیال شدم. بعد خیلی خیلی آروم رفتم سمت اتاق فیبی. میدونستم خدمتکار خونه نیست. طرف یه گوشش کره برام تعریف کرده بود وقتی که بچه بود داداشش چوب کرده تو گوشش. زیادی کره ولی مامان بابا مخصوصا مامان گوشش تیزه تیزه. به خاطر همین از کنار در اتاقشون پاورچین پاورچین رد شدم. حتی نفسمو حبس کردم. کنار گوشه بابا توپم در میگردی بیدار نمیشد ولی مامان واقعا فرق داشت. کافی بود یکی تو سیبری سرفه کنه تا بشنوه. خیلی عصبی بود مامان. اکثر اوقات چبا میشست به سیگار کشیدن. بالاخره بعد از یه ساعت رسیدم اتاق فیبی. تو اتاقش نبود حواسم نبود همیشه وقتایی که دیبی نبود میرفت اونجا اتاق دیبی از اتاقی دیگه بزرگتر بود تازه توش میستحریر گلاخی هم داشت که از زنی که زنیکه دایمالخمری تو فیلادلفیا خریده بودش با یه تخت خواب پت و پهن و درازی یه تخت خواب صد متر در 100 متر نمیدونم از کجا آورده بود <تصفح> کن. فیبی دوست داره وقتی دیبی نیست تو اتاقش بخوا دیبی هم اجازه میده باید وقتی مشق می نویسه پشت اون میزگنده بشینه به اندازه تخت بزرگه اینقدر که فیبی موقعی حل مشق توش گم میشه اون آش آشق همچین چیزایی میگه چون اتاقش کوچه که دوستش نداره میگه دوست داره وسایلش پخش و پلا کنه فیبی مگه چی داره برای پخش و پله کردن؟ هیچی خلاص رفتم اتاق دیبی و چراغ میز تحریرش رو روشن کردم. بالا سر فیبی بایستدم و تماشاش کردم خواب خواب بود سرشو یه وری رو بالش گذاشته بود دهنشم باز بود مسخره است. آدم بزرگارو دیدی؟ وقتی خوابن و دهنشون باز میشه چقدر مسخرن ولی بچه نه به بچه ها میاد حتی اگه آب دهنشون ریخته باشه رو سر و صورت و بالشم بازم بهشون میاد دور اتاق یه گشتی زدم یک کمی به وسایل نگاه کردم عوض این همه احساس منفی این بار حس خوبی داشتم حتی خیال سین کردن و مردنم از سرم پریده بود بلاخره حالم یک کمی بهتر شد لباسه فیبی روی سندلی کنار تختش بود بچه منظمیه مثل بعضی از این بچه ها نیستش که وسایلشونو جمع نمیکنن. ژاکت جاکت یشمی که مامان از کانادا براش گرفته بود پشت سندلی آویزون بود پیراهنش رو صندلی بود و کفش و هم جفت رو زمین بودن درست زیر سندلی کفشاش جدید بودن یه جفت کفش راحتی قهوه سوخته از همونایی که پای خودمم بود حسابی به اون لباسی که مامان از کانادا براش گرفته بود میومد مامانم هم همیشه لباس خوب تنش میکنه همیشه خدا مامان سر یه چیزایی حسابی خوش صلیقه است مثلا اصلاً تو خرید کفش اسکیت رو یه خوش سلیقه نیست ولی برای خرید لباس واقعاً حرف نداره. لباسای تن فیبی می‌کنه که ماه میشه. بیشتر ها رو ببین حتی اونایی که پدر مادرشون وضعشون خیلی خوبه معمولاً بد لباسن. ای کاش می‌تونستی فیبی تو اون لباسی که مامان از کانادا گرفته بود ببینی. وی شوخی. نشستم پشت میز دیبیو به وسایل رو میز نگاه کردم. بیشتر وسایل فیبی بودن. اکثرا هم کتابای مدرسه اش بالاترین کتاب کتابی بود به اسم ریاضی یعنی زنگ تفری. اولین صفحه رو باز کردم. فیبی خانوم نوشته بود فیبی ودرفیلد کالفید. کلاس چهارم بی یک. آخی اسم دومش جوزفین بود نه ودرفیلد. البته این اسمشو دوست نداره. هر بار می‌بینمش اسم دومش خودش عوض کرده. کتاب زیر ریاضی جغرافی بود. کتاب زیریش هم املا. املاش خوبه. کلاً درسش خوبه ولی خب املاش حرف نداره. زیر کتاب املا یه عالمه دفتر یادداشت داشت. هزار تا دفتر یادداشت داره به عمرت بچه ندیدی این همه دفتر یادداشت داشته باشه. یکیشونو باز کردم و صفحه اولشو خوندم. برنی زنگ تفری بیا پیشم کار خیلی خیلی واجبی بااد دارم صفحه اولش همین بود صفحه بعدی نوشته بود چرا آلاسکای جنوب شرقی این همه کارخونه قوطی سازی داره چون کلی ماهی سلامون داره چرا جنگل ها عرضش دارند چون هوای مناسبی دارند دولت برای راحتی حال اسکیموهای آلاسکایی چه می فردا جواب میگیریم فیبی ودرفیلد کالفید فیبی ودرفیلد کالفید فیبی ودرفیلد کالفید فیبی ودرفیلد کالفید فیبی کالفید وکیل فیبی ودرفیلد کالفید لطفاً اینو بده به شرلی شرلی گفته بودی متولد ماه قوسی ولی تو که متولد ماه سوری اومدی خونمون اسکیت ها من بیار نشستم پشت میز دیبیو و تموم دفتر یاد داشته خوندم خیلی طول نکشید خوندن این جور چیزا واقعا وقت نمیگره دفتر یاد داشته بچه ها رو میگم حالا فیبی باشه یا هرکی واقعا فرق نمی کنه حتی اگه شبانه روزم طول بکشه از خوندنشون حال میکنم. خوندن دفتر یاد داشته بچه و کیف داره بعدش یه سیگاری روشن کردم آخرین نخ بود اون سه پاکت دود کرده بودم آخر سر رفتم سر فیبی و بیدارش کردم خب چیکار کار میکردم؟ تا ابد همونجا رو صندلی میموندم تا ممکن بود مامان بابا سر برسن و نتونم با فیبی حرف بزنم به خاطر همین بیدارش کردم توندی بیدار شد لازم نبود داد بزنم فقط کافی بود رو تخت بشونی آروم بگی فیبی فیبی باشو که زودی پا میشه گفت هولدن بعد رو تخت نشست دست دختر گردنم خیلی مهربونه نسبت به سنش زیادی مهربونه ما چش گردم گفت کی رسیدی خونه معلوم بود از دیدنم خیلی خوشحال شده آروم باش <تصفيق> تازه رسیدم توالت خوبه؟ <تصفح> خوبم ناممو گرفتی؟ پنج صفحه وسط نوشتم آره یواشتر ممنون برام نامه داده بود البته فرصت جواب نداشتم از نمایش تازهش تو مدرسه گفته بود و ازم خواسته بود برای جمعه وقتم و خالی کنم و برم نمایششو ببینم نمایشتون چطور پیش میره؟ گفتی اسمش چی بود؟ مسابقه زیبایی کریسمس برای آمریکایا. کار افتضایی ولی من توش نقش بندیکت آرنولد رو بازی میکنم نقش اصلیه مال منه. خواب از کلش پریده بود. اینا رو میگفت هم هیجان زده شده بود. اینجوری شروع میشه که من دارم میمیرم. بعد سر کریسمس یه رو از راه میرسه و ازم میپرسه پشیمونم یا نه؟ پشیمون از خیانت به کشور و این چیزا. میای کارو ببینی؟ دیگه کم مونده بود وایسته رو تخت اینا رو برات نوشته بودم میای ببینی کالفید؟ آره آره که میام حتما میام بابا نمیاد واسه کالیفرنیا پرواز داره حسابی حسابی خواب از کلش پریده بود دو سانی هم نکشید که خوابش پرید نشسته بود و زانو زده بود رو تخت و بستامو همینطوری گرفته بود مامان گفت چهارشنبه میایی خونه اون گفت چهارشنبه؟ زود تعطیل شدیم انقد داد نزن همهرو بیدار کردی ساعت چنده مامان گفت دیر وقت بیرون هم رفتن یه مهمونی تو نور کناتیکت بگو غروبی چی کار کردم حدس بزن چه فیلمی دیدم نمیدونم ببین نگفت کی برم فیلم دکتر که یه فیلم ویژه بود تو بنیاد لیستر یه روز بیشتر نمایش نداشت همین امروز بود داستان دکتری بود تو کنتاکی که روی صورت بچه فرجی ملافه می و واسه همین هم زندان. فیلمش حرف نداشت. ببین فیبی گوش کن ببین. نگفتن کی بر می گردن. دلش باله بچه می سوزه. واسه همین هم ملافه می دازه روی صورتش که خفش کنه. بعد به حبس سعبت محکومش می ولی بچه‌ای که زنده مونده مدام میاد ازش تشکر میکنه. قاتل خوشنیتی بود فقط به خاطر این میدونه دکتران نباید کاری کنن که خدا رازی نیست حاضر میشه بره زندان مادر همگلسیم بردمون همکلسیم آلیس هولمبرگ بهترین دوستمه تنها دختریه که تو کل مدرسه. ببین فیبیه لحظه سب کن خب اصد یه سوال کردم مامان اینا گفتن کی برمیگردن نمیدونم. نه میدونم ولی دیر میان بابا ماشینو برد که نگران گیر قطار ن الان دیگه رادیوی ماشینا را ردیفش کردن. البته ماما میگه پشت ترافیک نمیتونیم روشنش کنیم. بگین نگی خیالم راحت شد. از اینکه گیر بیفتم و از این حرفا. اگه گیر میافتادم خیلی بد میشد. بعد فیبیو میدیدی یه لباس خواب آبی پوشیده بود که روی عقبش عکس فیل داشت. فیلاش خیلی ناز بودن. که گفتی فیلم خوبی بود ها؟ آره فقط عالی سرمو خورده بود و مامانش مدام حالشو میپرسید حتی وسط فیلم هم حالشو میپرسید درست وقتی فیلم میرسی جای حساسش مامانش خم میشد و میپرسید حالت خوبه؟ هرسامو در ورده بود ماجره سفر رو برش تعریف کردم ببین فیبی براتی صفحه گرفتم فقط این که تورا شکست خورداشو از جیب کتم در وردمونشونش دادم <تص> بدشون به من نگهشون میدارم اونا را از دستم گرفت و گذاشتشون تو کشوی پا دختی. خیلی مهربونه ازش پرسیدم دیوی برای کریسمس میاد یا نه مامان میگه شاید بیها چهدم نیاد بستگی داره شاید بمونه یه فیلمنامهای درباره آناپولیس بنویسه خدای من آناپولیس دیگه چیه یه داستان آشقان است حدس بزن کی توش بازی میکنه حدس بزن کدوم بازیگره برام مهم نیست فیبی. آنه پلیس به چه کارش میاد؟ اصلا ازش چی میدونه آن؟ اصلا یه همچین چیزی چه دخلی به داستانی که مینویسه داره؟ آخ بسن این چیز رو اعصابم بود. لعنت به این حالی مسخره. دست چی شده فیبی؟ یه برچسب بزرگ زده بود رو بازوش. چون لباس خوابش آستین نداشت این پسر کورتیس میینترپ که تو کلاسمونونه وقتی داشتم از پارک پایین میرفتم و داد میخوای جاشو ببینی؟ بچور کرد به کندن چسب ولش کن. چرا از پلا حوله داد؟ نمیدونم گمونم ازم متنفره منو سلما تو بادگیرش جاه ریخته بودیم خب کار خوبی نکردین آقا تو هنوز برای این کارا حسابی بچه ای؟ نه خیر هر بار تو پارک این پسر مدام دنبالم میکنه همیشه خدا دنبالم حصابم و خورد میکنه لاباد از تو خوشش میاد دوست ندارم از من خوشش بیاد اینو گفت و یهویی یه نگاش عوض شد هالدن مگه قرار نبود چهارشنبه بیای خونه چی پسر باید دقیقه به دقیقه حواستو جمعش میکردی اگه خیال کنی دختر باهوشی نیست پس حسابی تعطیلی چطور چه چهارشنبه نیومدی نکنه دوباره از مدرسه اخراج شدی بهت گفتم زود تعطیل شدیم همه مدرسه رو اخراج شدی تو اخراج شدی هولدن اینو گفته با مشت کوبید رو پام. وقتی عصبانی میشه قشنگ مش میزنه تو اخراج شدی هولدن دستشو گذاشت روی دهنش حسابی احساساتی شده بود کی گفته اخراج شدم آخه هان خودت خودت بعد دوباره با مشت کوبید رو پام. اگه خیال میکنی دردم نگرف حسابی داری اشتباه میکنی بابا میکشتت بعد دمر افتاد رو تخت و بالشتش و گذاشت رو سرش عادتش بود دیوونوازیاش مسخره بود بست که کسی منو نمیکشه کسی حتی قرار نیست هی hey, فیبی اون از سرت بردار هیچکی منو نمیکشه بالشتو بر نمیداشت امکان نداشت به کاری که نمیخوست وادارش کنی مدام تکرار میکرد بابا ولی صداش از زیر بالش که میومد خفه بود ببین هیچ کی منو نمیکشه یکم فکر کن بچه من قرار نیست اینجا بمونم تصمیم گرفتم یه مدت برم تو مزرعی جایی کار کنم یکی میشناسم که بابا بزرگش تو کلرادو مزرعه داره ممکن اونجا یه کاری پیدا کنم وقتی رفتم بهت زنگ میزنم البته اگه رفتم بس کن دیگه فیبی اونو از سرت بردار هی فیبی بس کن تو رو خدا بسه. باشه بس دیگه نمیکرد. میکرد اومدم بالشو بکشم ولی فایده نداشت اینه چی بالشو گرفته بود از بحث کردم باش خسته شدم اگه میخواست بالشو رو صورتش نگه داره نگه میداشت مدام میگفتم فیبی بسه بیخیال خیال شدی که هی آهای ودرفیلد بسه همومش کن گاهی نمیشد باش منطقی حرف زد آخر سر پا شدم رفتم تو پذیرایی از سیگارای توی جعبه روی میز یه چند تایی برداشتم و چپوندم تو چیبم سیگارم تموم شده بودم